فصل شش بخش اول امام حسین علیه السلام ربایی اعیاد شعبان المعظم شد ماه ولادت حسین و سجاد با مولد عباس بشد دلها شاد هم مولد اکبر آید و هم مهدی با نام رغیش و جهانی آباد ربایی اعیاد شعبانیه این ماه مه شاد و مهی احساسی است این ماه مه حسینی و عباسی است در مولد زینالابدین و مهدی ذکر سلوات گوهری الماس است ربایی اعیاد فرخنده ماه شعبان شش مولد فرخنده بود در این ماه ماه دو علی ماه عبا عبدالله هم ماه رقیه و ابل فضل بود هم آنکه کند کار جهان را اصلاح ربایی امام حسین علیه السلام محرم سد شکر که ما روزه و ماتم داریم چون دین خود از ماه محرم داریم هر لحظه که یا حسین را میگوییم در دیده خود اشک دم آدم داریم غزل طلوع محرم محرم است و مه روزه و مصیبت محرم است و مه گریه بر ازای شما محرم است و زمان سیه به کردن و ماه سین زدن در ازای خون خدا محرم آمده ماهی که جان فدا کردند تمام یار وفادار سیده محرم آمده ماهی که اشک میریزند ز آدم و حوا تا به یوسف زهرا محرم آمده و زنده ام الهی شاد هزار شکر که در دل دوباره شد قوا سلام بر حسین علیه السلام سلام من به حسین و به کربلای حسین تمام عالم امکان شود فدای حسین مهم محرم ارباب چون رسید از راه لباس های سیاه هم بتن برای حسین دوباره روزه ی عباس و قاسم و اکبر دوباره سین زدنهای های در ازای حسین و چون که پر زند این دل شبیه کفترها به سوی کرب و بلا و غم و سرای حسین خدا سپاس که دیدم مه محرم را تمام عمر آری منم گدای حسین تمام عمر آری منم گدای حسین